ذکر دجب سنن تنقل رہے مدار درید جام باقی اثر ده فهم و تعبین و صحابه چه پےو مسالک مختلفی ستا اختیار لچ دچا قول اختیار اور تابینو کلام فجت رہے اند اول صحابہ کہ ابن عباس نقل کر ولم یارا ابن عباس بالقراط لہ ہمیں ابن عباس سیم بوی جنب سر اقرات بیش جائز عالی سیم نا اور عالی سیم مولا بلیتی ابن عباس نا دکا خلیفہ راشد تکبیر, تکبیر خود علماء تکبیر پا پا شریف شریف اللہ اکبر و دعاکو ممنوع ننا دا بل حدیث چی امن عباس وی ابو صفیان حضور مبارک خط دا حرق خط دی کرو او خط که آیات تی او ظاہر دا, دا چی کافران جنوبی نوچی جنوب دا خط لستو او زمن که آیاتم لستو دی او دا واقع پا زمانا دا مصطفیٰ کشیمی دا واقع تی اما علم اداشو جنب سغی خیرات دقبران تولیشی یعلم بتا نده بدا جواب یاد داره چه سید الکھائنات پورا آیات ندلی کلی افتباسی دا آیات ندلی آیات دی قل یا احل الكتاب تعالو علا کرلی مدی سواب آران او دیکنی ویا احل الكتاب تعالو نده افتباس دا آیات نجائز دی پورا آیات نشو ویم دا چه خط صرف آیات کنو خط که خنوری خبریم بی محمد رسول اللہ محمد اله رقل عظیمی روم سلام علی منتب آمد اما با فینی ادو کبی دی آیت الاسلام اسلم تسلم یوتک اللہ حاجر کمرا سین ام تولیت فینی علیکی اسم الیری سین ویا احل کتاب نو دا آیات لاری چه خط مشتملی پنورو خبرو آف آیاتی نو حکم تابید آگا اکسریت بی لکه تفسیری آیاتم پکیو خاشیو شروحم پکی نیتی بار آگا شرحیو خاشیو لراده نو دا خط صرف پراسلیفو نمی دا خط تے نیتی بار اکسر اکثر اکسر مساو تلاوت بے جائز دے درین دا چی ممکنه دا وقت دا حکامات نو یا نبی کریم تفتح لگه دے چی دا دید غسل نفسلام دی جنابت کنونسی گی انسی که بلتا حضور داخت دی کر دا واقعات فمقابل دی اصطری حدیث که پیشکون دیست اللہ لدوائی فر پر امام بخاری دا طبیعت تیش دیکم جانب فاقی دا جانب دا پارا دن لاؤ اقوال نقل که غبل جانب نسیم منسیع کی دی جمع بین المتار زین مکر دانور فو قحا خو جمع بیرن متازین که لکه کرمزی بابا بگ دی ابو داود بابا بگ دی نسائید بابا بگ دی ابن ماجد بابا بگ, دی, با بگ دی, جانب جانب دی, دی. دی, دی دی یو باب دی دی یو جانک بل جانم نگ دی دی مسئلہ کے ملیان مختلف دی چی حق پا موزید خلاف کی یو دی کدور دی یو مسئلہ کی چی اختلاف راسی نو حق پا که یو دی که دو دی نو حق پا ماده دا خلاف که دو دی نو چه دو دی ندوانا پا حق شک سو علماوی حق پا ماده دا خلاف که یو دی عاب المعزود. دیکھا حضور مبارک وی اگر اجتا حد الحاکم فاسوا با فلہو اجران ویدا اختا اجر واحد آهدون نو که حق دوئی نو دی خودوارا مصیب دی دیم حق دو رسی دیم حق دو رسی او سید الكائناتیو تا مصیب بیم بلتا قطاع گئی مصیب ماندہ چی دی حق دو رسی دل دی او قطع ماندہ چی دی حق دو رسی دل دی خدا چی دن رسی دل رس دل اختی عجر دغپل کوشش کر امام بخاری دا سیمالمی چې دی قائلہ دی چې حق په موضع د خلاف کې دی نو دې بل جانب به ذکر کوي خو فیصلہ کن خبره ده چې دا حق په معنا دی یو حق حکم دی چې د خپل په دربار کرے هغه یو نه یې صاحب او خطا کې او یو حق مطلوب د عالم او مجتحد نه نو تا و دا دا مطلوب سده. تا تحقیقو که تا و و حق مطلاش تا با نو ده دو ده ده ده یو حق یو پا مانا د یو واقع ده که پا او یو حق پمانا دا مطلوب نه، مجتحب نا ناکه پمانا دا مطلوب دا مجتحب او که پمانا واقع اند اللہ ناکا یو دی دیو جا دا حضور دا حادث سنو توسو او دلیلی دا بنیم پریضا واقعا حضور مبارک صحابہ کرامو لے گل کر. او دیوارتوی لا یسولین ناهدکم ملاصر ایلا فی بنی قریض نا چا سوک لن چا مون پلا رکیو کم ویلم یرد من نازالک او چالتاو کم آدوان خبر حضور تا پیش آن حضور پی سکوتک معلوم داشت چیاری او بانستو زی مواری و آغا دا اغاق پل اجتحاد مطابق کرنے دے حضور پی سکوتک نا پس سکوت دا معلوم شو چی حق پا موضی دا خلاف کی یعنی مطلوب دا مجتہدنا اقدار چې تخپلې اتهاب سرقه نو دا باړو صحابو عمل ته سہی وي سکوته او کہ تقریر نبی سره صالح یا چا عادل کړه نه چا نه کړه باړه نه سکوت کړه غیرت شام په لاراش شام من حکیم نه حجام په صورت فرقان کی. ada umar se uma آئی که پیو جانب حکم دا باطن لگون دا خکار نده از زیادی نایمان قلتی سلام دل عزیم نبی سلمان عبد الرحمن قاسم قاسم وحمد آشد قان خرجا ما رسول اللہ سلم لا نسکر لیل حج علما جینا صرف تمسلو وما حید را آئی ودخلا علی نبی سلام مانا بکی فقال ما ایب کی اوز دی دا جوال دا حج او دا باقی عمالو چایشی کردی ده دلیل گرزیده ده چی تلعواتم رو آگه نو جگڑا پر تلعوات کرده پا ماز ده حج که نده تواف بنا که باقی خطول کولیش منات بزی مستلفی تبزی عرفات که بوانا شیطانان بولی تکبیرات بوانی تلبیه بوانی اپا جائز ده صرف تواف نمانا آره. فلم ماجی ناسر مقدم بانا فکی فکر مایب کی که کلتو لو ادتو والا انی لما حج العام تسخ که الحجن نویر آغلي قال لا لکه نفس دی قلتو نام کالفنن غالک شیم فتبه اللہ علا بناتی هده دا حدیث تر شکنه سوزا لی ففریم آیاتون الحاجن نیر تدوی بیت هتونی عبابل استحاده استحاده هکم استحاده ها دا مغا دمون یا من العاده نه لذا این داغ عادل لگ عاجز مرض نزیده مرات زوج نه. تا مستحضر تفسیر لطمه. آن زمان دلهم یوسف علی کنشان نبیان ناشتان لا اطحر افاد آسوالا یا نیوینا منبان دیگی فا رسول اللہ صلیم نماز آلکی ارخ دادا را دین آلا ولی ایسا بالحیز دا حیز ندی فیزا اقبالت الحیز دا چه حیز راشی فترو کسولا فیزا از حام قدروها فاصلی آنکه دام آسوال اقبال دا حیز با پسر که دا او پنید دا مالکیان پیتی او شوافه و حنابله بلد بارو اعتبار کئی فکر قضم ممیز پا دباروی شوافه اعتبار الوانو لاروک حنابله اعتبار ایامو لاروک مثلا یو خدا ده پنزر ده سروی نرالا بیت دوره شو خنور کل عادتی ورز نو دا با دا هم ورز و اعتبار کئی سر رنگ به اعتبار کئی دوار عادت شوافه بای دا با در رنگو نو اعتبار کئی حنا بلوی در وضو بیتی بارک دمون مذہبون در وضو دے دا حدیثو سے مجمل دے فیدا اکبرتا حیدہ فابو داود کے فن نزالی کا دمون اسفد یورپ دا راگلو کر فا حدیث دیفہ دے پی اتفاق دا علماء وکم دا حدیث دفاتی میں فدی بلا سفاکر آنوان حضور ورسا ایا مولای آلی وی بلدت اقبال کمراتی نا اقبال بدنم بے بی. نہ حضور بعد اتنا پوس کڑے وچ استاد ابھی نران سنگر پیجا نے کنا نو سو کہا ہے او کیندا نام اس وتر کول استفسار فی مواقع الحال ما قیام الاحتمال ينزل منزله عموم المقال تر کول استفسار فی مواقع الحال ما قیام الاحتمال یونست در منزلت عموم البخار یوزه که در تپوز ضرورتی و تپوز نشی سرده چه باعث موجودی و داره دلالت بدیوی چه در حکم عام ده و حضور مبارک ده دینا در سنوکه نکو تو وینا پیجا نکنه و معلوم داشته چه در رنگ لیتی بارنش در او باب و قصر دم الحیض در دم الحیض بیزن دل سلام بالله آن شب نعروتان و خاطر بتابید در مزرعه آسمان بیبرد و تیک لذت داد. آن آخر استعلات مردم رسول الله صلّى الله علیه و سلم رسول الله علیه ده دانه داشت سب سب هضم و بر الحدا کیف تصنع او شیون ور رسول الله صلّى الله علیه و سلم داشت سب سب هضم و بر الحدا تفلت خرسو فنکتی وگر سملت زحم باد و زیبایی و حدثن از باو قال اخونا مرحمن قال اخونا امرو محادثا آنم درحمن بی بی و نبینا آشه قال کانت احدان من و على سائره اغزه بیوزو پا باقی بیتر امکیو کرا مالی دا پا زین و یا ما حول دا, دا نجاست نجاست خوباوین سمت و سلیم آمام اعتقاف کولش حکم د بکی بکی حج بکی تواح بکی چیما و کولشی روچی و منزون بکی دیکھ دکه بی اگه حید خاص نده زنی صاحب نشاہین آبو بشل واسدیو اللہ پرانا من عبداللہ انقرادین اکرامتان آشت رضی اللہ انم نبی اسلام ایتا کرما ہو باغو نسائی و غی مستحادتو سید الكائنات سریو بی بی اتکاف کرو ادا مستحادا و تردما دین بو بین بیدا فربما و ذات تستا تحت حا لاند بیدان تا تال کے قود پائی و ببا تکلی من تحت همین دم, دم دوین و دو جن وز عمان ناشه ترات مال عصفر یو زنده زیڑی بولی دی عصفوری عصفر گل دی زیڑی بولی دی دا حیز بینا خالص سرنی زروپا که سفرخی توری خرین اسواری بدبوین بیماری را کنا بعد داست استحادی موری دلی چی تیز خوابوین قاون مرتنش نیز دیکید قانت ایتکم نوائی فقانت آیشه بیوی کان نه هادا شم کانت فلان زونتا جیدو درد ویداز زیادو بیجود در فلان که دید آغین اپر بیده اندسان افتیم بطون قانت ایتکم قانت ایتکم ایتکم ایتکم ایتکم ارسول اللہ سامراتو منتزا جواجید یا بی بیور سر اتکاف کرو بی و هی و سفر فکان تردم و سفرتا و تستو تحت بار <تصف> را تول قامونا در خوزو دی دوم را دی چی تو بی بابا سی کم مستحادنی دا حیث و پیارمیاش را دی فا با لان اولی دی حضر رامزم قان را تول کو خبری نید آخری خط خذبان اولی دیارمیاش را اولی دوست من تکلیف چیقی ہوئی اوستنینی ویلیو زور زور گئی از دمرو غٹ ماشوم چیتی روزی اونا پا ٹوک روزی کلپکی مدیش بیه پیروان نوزی بیتی وینی نوزی بیت سلوی خورن زیتی سخاوی نروان آم بستره داس سخایی تی سوکورتنی دیکی لینش شکر و باس <تصفح> دو خوش شکر و باس <تصفح> خوزو چلی روشی نو خوابایی پی ندوار تایم گرو را عرصا لیم قوم خوبا خپل قوم پا دو خوش آلیگی او تاسد خپل قوم پا دو خوابا گیگی را چاندالا چی دیاته شو خوش آلیگی تالی ماندیاتی تالی پی خوش اوستاز و ڈالا شدیاتی کنو خبا کی گئی نو خذا پا خذا پیدا کنو خبا کی بابن حل تو سلی المرد فی سو من پا جامو کی مذکوری جحید پا کی تیر کری نو پر طریقہ دستفاہ میں ذکر کر اشاری حالات ہوتا دا, دا, دا جن فرا دا حیث دا پارده چو جان جان ما ساتی چو دیرشی نو بید پاک جان میو آو آنکه غریب ای نو خیر دیم آغا جامو کی منسکولی شکو تاکی ما کی کپی لگی دلی آغا دی اونی زی نو آیا منسکولی شکو نو آو کپکر ذکر ددبو بیبیانو آخر ذکر دی آئیشه بیبیوی زمون خویا جامو آئی کبا حیث و مند با مکام نو کی ساتی کی برسی دلیو آغا با مویز د او می ما ایمان جامعی راو جدا و دا جدا نظر مونگو تنکی خود جدا جامعی ساتی بارا خود خماندارا خو نی آمدار چاپا خواد جامع او دی پحل تقسیم الالحارات گئی که حال دی دا فراخیم نو جامع او که حال دی اما جامع کی منز أو كذا فيني داع ماريا كتير من ذا، ما المرض ابن حلف في سومنديك سخنات نشتى، أنا كتير فدي، كيفي؟ خمسة نعم نعم خارج سناي براهم نافش نعم لأبي رجيم ما كان ده دانا إلا سومن واحد، رموق خبايا وجمو سومن ذا فخر جد، قسم که در خزی لدری جوڑی در وزیر اوڑی و سلورم و بواری دا بنوی چی بس که ندا کالون خزی مریگی آنه دا جامو کنی شایب مولی سے مطبوس ویزمو خیو جامو تحید فی فیدا سا به شیع من دامن قالت دریقها فمسام مساعتم که داست ساس که ماس که با نو پا لارا با پی پوره که پنک بمداره مدام بلگه بینا محفو آنه ها او دهنه مالمهی چه لگه بینا پا لارا با پاکی نکه سرگی خوله که بینا راش او توکه بیالاره توکه نو آقا پاکی را او لستارا خوله و بزفره ها او لارا با پی پوره که پنک بمدار سهو گارون اخلاص لحظ بینا ٹھنگ گئی آگا پتره جوڑی پتره آگا پتره بیلرگ آگا پتره بیلرگ آگا پتره بیلرگ آگا پتره بیلی علمات این دا غسل حان الان حیث خلد چه حیث آن زینو دی یو احداد دید یو احرام ده احرام کی زینت رواره خوشبوهی بنده ده اما په احداد که چه پا خاون احداد که خوشبوهی رواره ده زینت بنده کالی و غری قیمتی جانبی بنا رو ده خوکولان بی رحیزنان خوشبوهی لگو آج احرام کی خدا تواب عمره لذی یا حج نور نو دوالوالا رواره کالیا چولیشی خیمتی دیامیا چولیشی خشبوینیشی لگونه نو دیوائی که یو خذی او دا حیزن اللام بیرستو دی خشبوینو لگای خشبوینی که بفیدی ما توی یو خواه غبت بویل آرش بهم دا چه حمل علوخ زر را دی خذی چه دا حیزن اللام دی که حمل امین زیاده باب الطيب للمادين ده غسل حامل المحيد خشبه يستعمال كده غسل لحيد فوقك حضر السلام لله من المدرو قال الله سلام ماذا مزيدنا أيبنا فيها ومعفيا فالكننا ننحا المحيد على ميت فوق صلاة من من وچه احداد بنكروبه يومني زياد ددري ورزونا احداد ترك سيب وزينت إلا على زوجن بغير دخان ناربا تاشر ومعشر السلوم ياشت اللس رد نصد ولا نکته هلرانچه بنامجو، ولا آن ترتويم خشمي بنالگو، ولا آن لباس سوابن مصبوغ، آن بارانگينا جامعه اوندو، هلا سوابع استن، مگر دا چارخانه جامه، از شدت ویدا تارونا چی دا نو و دا و سسپین دا داغی عام جامع وردوه لیو ستارون اسپینه و سرنگینه داس جامعه با دا داغی دا درورت دا جامع ونوی خیر دی چارخانه جامخه وقد رخص لنا انده تهر تهر وقت دا اجازت و ازخت سلط احدانا من محیدها تلحیزن الان بی نصبر کهی فی نبزت من کست اصفار سلگای ساد خوشبوید اصفار قست و قست او ده هندی قشموی ده اصفار یا علاقه ده پا یمن که یا دنو کنو پا شکل با اوچه خشموی ملاوی ده تا قست اصفار باش داس دنو پا شکل اوچه خشموی دا ملاوی گی پا بادارونو که دا پا فرجم گی دا پاس و کنانو لحان اتباع الجناد من با منکی دیشو دلو دا جنازو نو با ده دا شی اکان دا دا سایان پا جنازو پا خودم زی سرین زی آبا با دل من الحیز خوزو با خمو گیزان دا حیز را یعنی دیکی مبالا غدا پلان بلو که وکی این فتح تسر قسل بسنگه که وطا خوزو فرستان مما سکتان یو تکڑا دی روانی چی پا مشکل لگی فتح تم با بها اثارت د مشکو لڑه لی در مسک یا مسک مشکو تاوی یا سرمنه یا تکڑا آده پا مشکو لڑه در او لبینو پا زیبانیو مجیده فرج پاوشات و گرام دیر تبلیغ بارده سلورنو ششوانی تکشنن از دوم را مان تو چی تعلیم که او دا خوشمگی دکیلی دو دفلن <laughs> آره خوشمگی خیلی گواری اب با دارون که یاد در جمعه دا بیکار گیا نا خود آن سوچه خوشمگی دا, خوش دا گرانمی فیدم روح آو دماغ درس. دا فیدم درسه دا مقصد دا, دا, دا, دا, دا او که مبالا تاکید دی دا موسن. ندی وگن حنابیلوی په نور و گسلنو کی دا سرس پر دل پا خزنش دا خدا حید و دا نفاس پا لام بلوکی با سرس دکه ساد پسی او گنده پا تشیوی ندی که مبالا غراغنه دا من با با دل مرد نفس های دا بزان با خواست بیر و پان بیر پا از دامن ترختی او بوده و دامن وارد سرمی واید. اگر ذکری نبازه، از دا، پاتمود اگر تیز اگر ذهري دارو هغه نه نه سرمی باندل استنومد بس ابونی نداری. نو بوده. نبی کریم بیرو پانو که بو سرده چه بو که گره که داس او بز درشیزم خوش کشه دا دا دا. او دارو در خط باشد او خلدنا احمقانتنا منعینتنا منصور مزفیر و میا ناشتا رجلانا نمراتنا سالت النبی سلمان غسلها من محیز یا خوزی تپوزو کشید حیز نمو سنگا غسل کم آمارا حاکیم فردختا سل حضور و تقوح کمک خان خوزیم فرصتا ممسک یا تکڑا آوالا در زده سرمنه خوز آخر دار چی دا مشک دیدکم پا تتحری بیها پا دی تکڑا دا مشک زان پاک که ناقی وی یه چی پا تکڑا دا مشک سرین زان پاک ایزان سرین پا بو پاک که قارت کیفا تتحر بیها دا پا تکڑا دا مشک زینگ زان پاک که قارت تتحری بیها و ایزان ایک بخت زان پی پاک که اغوال تنور سنوه خالت که فبیعوی سنگه پیزان پاک کم سبحان اللہ تتحاری در لارش زان بی پاک کم آئیش بیوئی مونی ولد جامونا چه دیکھوارا چه زبر پیکم فجت زبط هایلی یما تراخ کنا ما وطوئی اثر مطلب دار چکم جه که اثر و اثر لارشی دنگ مطلب در تتحار آباب و قصّل محیز د محیز آه قصّل بسیم که یکی مبالغه و احتمام نسرس پر دلی دا خوش موع مقل نادیر ودی پسی کرد و خدا گرددی اکثر حدثنا سنا مسیح مقاتل سنا وی من قات سنا مسیح رنمیه ناشتا آن لنبی سلام که فاخت سنا محیز حدیث بیا بیانه دا حیث نبا سنگا غسل کم قال خوزی فرصت ممستکا یو تکڑا روانه چی پا مشکل لڑلی شوی و توزده ای او پاغی او دسو که دره کارت ای وردو دره کارت ای وردو حضور موقدا و مقا حدیث حضور حیاء کونه دا ورد نوی چی سنگا و مقا فارد بگو جی حضور مبارک مفوالو او قال توزده بی ها دا وردوی پاغی او دسو که په خص تو ح دا دنانو ونی مه سبته را د پیکم په تو حې ماريد د نه با ت شا المه د اوس عمل محض چې او حل نهکیو سر مونزې سر لکودي سربا سر به ب دومون کې لکه غسل کې مباله غله او تا دی مسائل ملو ک خلاف پیشتهغ سیزونه چې د سدل کااتته پهعادېسو ک تولا داب دی ازیاد موسیقی اسمائیل خلاصن ابراهیم خلاصن مشاعر و ناشتا قارتا حلال تما رسول اللہ علیہ وسلم حفی اجت دلودا فکنتو من زمرتا تمتون مکڑو تمتون و دوارا دوارا دوارا, دوارا عمرینیتو ولم یسقل حدی حدیر آسرنو فدعمتا نا حادت پا ما کے ولم تتخل لابا کشینم حتا دخل اللیلتو عرفا او سان لب خلق رفات او طمار آل اشکولا حیدن نیم و پاکشه دو بیبیانه بیان حد کی حیده شوی خواه یو حضرت آیشه پا امتدا کی یو حضرت سفیه پا انتحا کی آغیر توافی زیارت کرو من توافی و داد آغی نساخت شو او دا پا امتدا کیونه دی عمرو نکرشو دی بیرست عمرو کرو دو بی بیانو ما نحید را را گلی او حضرت سفیه نو آئی فکارت یا رسول اللہ حادی لینا تو آرفا شیف سال نارفات تخلق بذیر انما کنتو تمتا امرا ما پنیت دام ری کرو فکارت یا رسول اللہ من قدیر آسکت سر دوس پڑا وم تشیدی سر گمز که داد تفرگا لام بالنبی خواه احرام یو نخلا پنیت بانده و لام بحث کنی اکو حیزر و ام تشیدی سرگماند که و ام سکیان عمرتی که عمران اپنیده و سعالتو فیلم معخذیتو الحج امر عبد الرحمن لیلت الحسبا دم ارورت اوی عبد الرحمن دینا ده دینا مشرده لیلت الحسبا اگه شپاده چه محسب که دی وقت ریو بید شپیزی و تنده دو اپس اشپاده حجنه وی ارورت امیوی چه دا خورده بود امتی ادم ندین عمل دی بکار دی, با دی, با دی بعد مارس این مریان این تدبیر کیت احکام شده تدبیر از روشو احیش و روشو احیش فیافوزن نه تدبیر نه لکه نتیاز کو لو دستمات افراد او ناد رونا امیتن آن ابن عبدالله خالف و نصفیم <تصفح> قاسمز و رحمان خاص باسمز و قاسمز در حدیث مختم بیلیو قابع برام شب حد کی بار بار سمیتو آلکه دا حد پا حصیت بنا خلقه سمیتو آشه تقبول خرجنا لا مراه إلا الحد مونچ حل لتنو صرف نتم دا حد لما کننا بسرف چی سرفتو غرسی دا حستو پا ما حید رائی سید الكائنات پر آره ما ککی و ما جلال ذکر صحابو تیوی عمرو حلال کی عوض دا عمرینا عمره بارت پی توافو لسائن تواقف داخل حرم کی هیزا خذق نشکلی ما جدول ما تو ایمانک یا نفس دی پتانک فاسران اما تا یو نمونم که حیث که رسیلی نفان ادا پسی غدا مقصور استه مالی دا مجھولی یا نفس دی او یا نفس دی چی نفسی نم پسی غدا معلوم گوه او چی حیث تی تابیر که نسی غدا مجھولی گوه قل تنام قال إن هذا أمر كتبه الله على بناتي آدم إذا الشيخ ذي مخرج كدري فبناتي آدم ما يرفض الحال غير أم لا تدخل في البيت حالق وزحى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائل اللقاء بيق قربانيك يقوى أقاني لالك ذي بيبيان وطلق بالبقرة مرخة سيلفت بالبقرة بقرة لك ندي جميع أسماء الجناز في فرق واحد. أو جميع بتي سري. چه تیور کنه او چه تیور سرین امراض کنه دیوی او باب و قشل الحاج و یعنی عیاد کی خداوی چه خودت خدا دا سی جنر آنگلی دیکھ اتفاق سر سر منزلی شیل گمنزولی شی ناغچ مباشرات بی مکنه امراد کنه ما تحت لذاب جناب دلیمیز ویقید افرامان ویشان من عمرت ویشان من عمرت ویشان فا لکنتو رجل وراصل رسولی سمانا حایدن ما بسرد حضور کم انزو عزب حیدن اونا اوزا تالیمانا سوال دی چی باب کے خوغسل او چیز دوارا دیکر دی او حدیث کی صرف ترجیل دیکر دی او باب کے سین سابت نو جواب دا ایسی دقی حدیث کی معذر ایو آیاتی که ذکر جواب نو, و و ترجیل قسلنا. سر واری ولد نو قسل دی پانا سر و سر عباب دیتی بیم دا چی ترجیل دا زی پستا غسل سر علیگو منزی بسر اندی و غری نو غسل تی ثابت ابراهیم و شام انا خالا خوال نشان نعردان نو سوی لا تک دون خائدو اور وچه ما شاید با چه حیدر ویل دما خدمت کولشی او تدو من المرط وی جنوبا او خضر طران ازده کی دیشی چی جنوبا سملاسی دیشی مخال اروتو اروتو او روطوی کلو ذالک علی حید دا دول ما تا يعني خير یعنی خیر دی تروانا لی و ذالک تخدمونی او هر کس ما خضر دما که حیزایی که جنو بی ولی سالا حدن فی ذالک باسم آسو گنا پا کی نشتا دکا ما تمترو بی لی آشی بی بی انها کانت ترقیل رسول اللہ علیہ وسلم وی حایدون ما بس سر دا حضور کو منزو عضو بحیدون ورسول اللہ علیہ وسلم حین اذن مجاورن في المحجد آغم موتا کفو پا جمعات یدنی لها راس وی فی حجرتها ما تبی سر و زنک و کمریت تلکیو حاید اکار که ازدواج سامشته، ن صر ده داستن نکه ما تولیش خروج کیتی وار چاله بخپوله ده کسر لعوره، پول لعوره، ن صر ده سر سر و مینده، آبیم آبی, ابی ولگو مسکس، آن باعث خنات رجلی فی حجره من تیوا یحای بود، ری، دی یا سره داغی پسی نیخی او قرآن شریف لولی نو خیر دے. یعنی قرآن دا قرآن پچم دا کے جائز دے. اگر چیز آئی رد آ چیزا محلی سا محل دا نجا سات دیں او دا دیمی در تخی وکانا ابو وائنی یوسل قادمه تیلا فقهاء تابین و تابینو کلام نقل که ابو وائل تابعی دب خدمتگارا خضاو لیکلا وی حاید خضا بحاید را ایلا بیرزین ایلا بیرزین تا فیتا دیه بالمصحف قرآن شریف بیوالا روڑا او پس اللہ کبی نیولیو نا فتمسی کبی علاقاتی فغلاح مزی کبیتاری لی روڑا ایلا جا من مسئلہ کم دے ایلا مسئلہ قرآن او که داسی زیادی توپرکی نیولی یا غلاف کیوں مزی اتنا داسیونی تنو خیر ده. مثلا ابو نعيم الحجر من ذكيانه وثمان ذهره مصوله من سبيانه امه وحدثته انا عاشدة حدثت عن النبيه السلام كان يدكي في حجري زمان طاقيقي بيدانه وانه وانه حايده عزبه حيزه وقسمه يقرؤه القرآنه بابه يقضران شريف لسه بعد من نسمى النفاة حيزه حشيكي بالله فهم لي والحيزه نفاسه كثب حيزه نفاسه وي نفاته امار تا پیون نہ دا حیث کسی ویلیو نفاس اما من نفاس کی دی عاشی حضور انو او سی او سوال چه داخل دا لغات و کتاب ندیش دی لغات نفاس کی, نیفاس نیفاس باپ کی خودو را خل دلوغا تو هم اصدنه در در در در حدیث و احکامی دو خبرو تایشان را اول دار چیز حیز او ده نفاس احکام یهو دی نفاس تبعید صلی ارسلو اقتونه گفوره او حیز تبعید استحانانا دیتو دی نفاسم چیز دخلی مدین او حیثم چیز اکپلی مدین از یاد شیمیش که هاده دا دا نفاس و دا حیث احکام یو دی نیشارکی اتحاد دا احکام و نو فساس هرم ما فوق لیزار کولی شی خبری ورس را کولی شی دوڑی اخواری شی خلولی شی شریف داری پاگید کلستی شی لیکن دا حیثی چیز احکام دی احکام لا نفاس دی نا نفاس مستقل بابونه ندی دی اگر حید نفات احکامی اولی جو مات تا دوارا نشت لی روجید بارا نشی نوی تواف دوارا نشی کونی که اتحاد احکام دا, دا حید بین دا چی او مسلی که ازمون دا احناسو او دا طرف او مالکیانا شوافی بل طرف تے دارا فا دوران که کنی مامان وی درد. احکام دا دا او احکام در حیز با فجاری جا او مامان وی چه دا, دا, دا, دا چه بندش چه سره خود تچکی و امیدیوش نووینه بند داشت طول خود داوی آقاوین خود پا غذا دماشم گردوی نا چکم آقی که اجزای اصلی بی آقا غذا آقا دا, دا فضله چی جمع کی گی جمع کی گی نو بیر دا سلور میاشتی چی کنا آقاوین جمع شی ایمان بایدید کنید نفس پیروپ خواهیم نو بیده هیزی غزه کردی او دینا مخیشی جمشیویینا اید نفس پر شکل کنید نو با امان سمن سم نفس حیزا دا نفس چی دی دا دا حیز آگوینا چوکسون دی نو که دینا بید نفس سورت سو نو احنا تو حنا بیلو خول ترجیو ارکای چی آدی که چرتیبی نرالا او دا استحاده دا و بیماری دا دا حید استلاحی نره ندبای مامان دا جوان دا حیث خائله دی پا دوران دا حمل که آدبای مامان خائله نره شان مارشاہ صاحب بائی فقاولا پکارو چی دی مسلکی تبیبانو پر جو کرده نا دا دی خائله دی کلا نا کلا رازی خدا نادیر صورت عام صورت دنو کی دا نفاس دا حمل چوشی حیز بندش رحم بندش او بین سر وزیاتی بی او بین غزا دا دیدی نمپ زریعه با لی بین رسی او غزی گردی آو نا غزیاتی بینا چی جمشوی اصخا نا دا نفاس بشکل کیوزی او با اومن سمن نفاس حیزار دا حیث دا چی نفاس دا قول دو مسلو یا اتحاد آنکت آئیو تالیب ادره تاتا سرچه اقپاس وی وی واده دکھره رکنان نا دکھره چون زکر دیمتالو تو وقت ناید دی دیر ضروره دیر دیر تالیبان پایدا که کتاب لیتخ نوی یا نمی آیام نیشتا نا سیکا نا دا مکاتبی نا مکاتب احکام نا دا اتخ کتاب الخضا مو آیا زکری پاکستان کی خضایش ارین ن که ندیم دوې لا ټانګ پغاړه شوې ده کن بیا به ورته خیال سات هلکه ان دا د مولا ښځه ښه مولا ښوي نو د کلي تا ترې تپوسونه کوي میدا زود کیا خزت و خیمسالی زنانوں کی تبدیل کیو فیداران آگر شکر دی دل زمانه دی خواه چی دیر مسائلی زدکر با لمبل خسر بینویز دی بیورا پوری خواه خان دی او دی زنانی چی سر لیگوٹی ورکڑی چی سوزلا رابان غسل ورد دلی مو پیوزل بی بیوک نبا هم من سم من نفات حیدان که نفات تحیز ہوئی انسان هم اکشیمی بایم قالوا مبا هم حدیث دا ذکر که او را اسی یوم سرکی ذکر قال بینا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دو مسلمی حدیث دا موسیم حضور سرم لاستم فا خمیس دن پس آدار که فا ادحس تو حید راوان را فا دا حیز جامعه می مواغست خوزو اکثر دا حیز دا پار جدا پر تبجو که دکایی که, که دا بینی دا ساس کو یه رسیدو یه رئی فخالا نفسته راست دا نفاسو که حیز قلتو نعم فدعانی فستجاتو موفی الخمیلہ بیاور سر اسملاسنا او دا تالیبانو یا اسوال دی چی دلتا خو نفاسو او کی عکس باو من سمن سم نفاس حیزن دکا نفاس مفولی اولی او حیز مفولی سانی دی او مفولی چیز دا قائم قام دا مبتده دا خبری نو عن نفاس و حیزن شو اطلاق دا حیز پا نفاس راغلی دی پا باب ندا معلومی گی چی باب دی بیان دا جواز دی اطلاق دا حیز پا نفاس او دل تا اطلاق دا نفاس پا حیز راغلی دی نو عکس دی باب دلالت پا نفاس تا حیث با من سمن نفاس حیث او حدیث کی حیث تا سو ویلش نفاس ویلش نم باب اکست دا حدیث شریف دا دالی بانو سوال نم باب تذکر با من سمن نفاس حیثن والحیث نفاسن نم باب مناسبت ده حدیث مبارک دا دیر جمله جملی سا چی پا حاشین ای که نفات اطلاق سوی لیشو نفات سوی لیشو با یو جو آم حدیث تطبیق در حدیث جس طرح دیش کم پا حاشی لی کنید بیم دا اطلاق آره. من اطلاق النفات احیدر کچا نفات اطلاق و کپا حید نو یعنی واره. نفات اطلاق پا حیدر آره او در حباب سرمان آسم دی زکا حید بان حضور مبارک دسو نفس که یادل تا قلب دا کا دا نفاس دا مفولی سانی و حیز مفولی اول دی نو اصل که داس شو با من سمع حیز النفاسا حیز نفاسوی لگی من حیز نفاسا بے اببام صلی اللہ مناسبت شو اببام مباشرت الحاج وقت پرنس رب العالمین السلام و السلام علاق الا سعی دلم بیاره الله الرحمن سر بشرت بشرت بشرت بشرت بشرت سر نملاست ملا مسائل تیر چه مباشرد دا که دری صورت دی بیتفاقی دی یو اختلافی دی. یا یو اتفاقی پج آدم جواز جواست کرد چه آخوات دی وات پیتفاق تا علا موصر یعنی فرق دا پی ممنون دی بهم دری بیم صورت جائز دیتفاقا ناقا ما فوقا لیزار دری ما تحتا لیزار ما سوا دا فرجنا دیکی خلاف دی ندری ور فقحا دا ملت پا دیدی ما فوق لزار بکیم آ تحت لزار بنات حضرت امام احمد سے او زمان پا اموکی محمد ابن عسن شیبانی اما تحت لزارم جائز وی علا آوز جیمان آمان تمنشد خلاف پرنوی لیو چهو لفظ دا محیث دی بلا حادیث سلا تقربوهن فی المحیط قل هوا اذن فاتذر النساء فی المحیط نو حضرت امام احمد و محمد سید دا ذرف مکان گنی نزید حیزن ایمان کرده او دا نور فقه هی دا مستر امیمی گنی استدلال حدیثو دا مسلم شریف حدیث دیس ناو کل شین الا النکاح نو نکاح پا لغت کی واتی تاوی احادیث را معلومی گی چه را آوات واتی نتول جائز پا نور احادیث صریح تی ده حضور عمل و اخوال یا صدی ده تا پوست لی من امراتی وی حایدون خال را کما فوق الازار امام بخاری ده مسئلہ که ده ده ده ده وارفو قحا و قول اختیار کرده آفا مباشرت بحیده که احادیث تا آشی ذکر کرده چهامو باعث مافوق کل ازار شدند. حدیث ناطو بیشتر کالج ناز پیانو مسونی برایش مال نشوده ناشن. حالا کم تات من این واحد و کلان اجنوب و یا مورنی فات ما تبعهک مک ما وكان يخرج ورأسه إليه وموته كفن فاسله وانا حائد وحسن الله سبحانه من خليل قال أخبارنا علم قال أخبارنا بيساقه وشيبانيه وان عبد الرحمن من أسود نبينا عشت رضي الله عنها قالت كانت إحدان إذا كانت حائدا من كتب يوبي بي حائدوا وفاراد صلى الله سلم يباشرها اما ها انتظر في فور حائدتها پا جوش دحیس کے پا ابتدار دحیس کے پا والرز دحیس کے سمی باشر رحان قانت و ایوکم یم لکو عربہو کما کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم لکو عربہو یا عربہو کم یو سڑی خپل حاجت و اقپل نصف قابو کی دلکر سیدو الكائنات چی خابولا عربت حاجت و عربت اولا ده دفت سر عرب حاجت مو عزوه ده جمله سه مطلب ده چایشه ہوئی تاسو که ده خب حاجت قابل رلیشی لکه ده حضور پاک مطلب مطلبه عالمانه ده مطلب بیانه اول دا اچھی دا ترحیب گئی دا مباشارتنا جو گرد دا حضور نصب اقبل اختیار کی استاد سننه دی استاد سمع فوق لزارم مکاره اخو معصوم و محفوظ نو دا شحوت دا سلی اختیار کنه دیکھواره نو مقصد دی ترحیب دا مباشارت او نحی دا قربان دا حاج حیجین دا احتیاطن احتیاط پا دیکی دی چھمکی گی کہ نبی کریم کاؤ خدا آغا نص پحپل اختیار کاؤ دیم مانا زد دے کئی شی سید القائنات شید آغا شاہوت او حاجت پحپل اختیار کاؤ یعنی خابو آغم و باشارت کرنے دی مطاسق من باب اولاکم لشیزکت آسو کمزوری نوجوانانی ان نو انتقاابم دے رہے نہ چہ حضور ممان سران د عفت نفس مان اور سران د اختیار نہ بخشپن نفس اگر مباشرت کرے شہوات دا پستون اختیار کیوں متا س کو کمزور اے تا س کو لشی میں با اولاد ماں مسئلے اسبان دا جواز تا مباشرت ہم انا اولہ ذاتوارحہ اما صدعشی ترہیب در قرباننا زمینز دیکھیں ان جناب منمر خان جناب عبدالواحد خان رحمتہ اللہ علیہ جناب شیخ عبدالقادر ارباح وترک الحائض صاح اذا صوم نہ مسی صلاۃ ذکر نہ کر ذکر صلاۃ ترک واضح ذکر شرط لا صلاۃ طہارتہ آ طہارت مکو 19 کا ہصام کی قرابت ہے لیکن صوم کی خود طہارت شرط ہے جنب چڑی روزے سے کی گئی اندے ہوئے حیضہ بروں جنم دول اهل حق بندری چه صوم, صوم و صلات و را و اهل سنت توی ده صوم قضا است و ده صلات نمیشد او خوارج بین قضا و ظهار وری اثر من که نا حروریتان عامه هستند اما ناسین نمانیم من هم اهل سنت هم هم جان کار محمد رسول الله صلی الله علیه و آله قدری رسول الله صلی فی علیه و فی فدره الی المسल्ला فمرران نسای پزارانه واره پستمان زنا مهلة ماشاءالله تصرف نه صداقی حضور مبارک بداسید جهاد دپارش ضروره تو مجالس بدی مجازی سوامو که به تقلب صداقی کو جهاد دپار فینیوری تو ما تدری خودلی شیوع پدوس اخیانه فکر ناو رسول الله داوره حالت اکسرنا اللانا و تکرنا الاشیر تاسو لانت دیات پایا پایو بل دل اونا شکر کواید خواهد کتولو مرد الاسشیر و یورد الاسلونونی پوز ما من ناقصات آخرین و دینن اصحابا بلجن حاضر من مانی دلی ردا سے خلق شاق خلیم کم دی او دینیم کم دی او تختی خالص عقل لو خیار تجربہ کار سرے چھو دیر و خیاری آگا آگم دوکہ کئی دا آگا آگم و تختی. لب خالص عقل مغل قلناو ما نقصانو دینینا و, و, دین و خنان سیب دینینا و خلم پس کم دی خاله لس شهادت المان مثل نسش الرجل رجل شهادت دخه بقانون الهی نسب د شهادت دست بده کنایه از ادای دل و ذکر اهداره مال افراد. آن خاله فدارک ابن اصّان اغلها. لم تسله. جهداشیمون اگرچه بی اختیار ده خود دین دیخو نقصانو نا شد کن دمرو رجل عبادت دا محروم پاتی که دل نامی و نقصان دی او با منطق تل حراج المناسی که کل هایل نتواهو البید حیز بطول عمال ده حج که د ده تواف او تواف سر تابیس آئی نشی کولی البته که توافی کدی رستو پی حیدر آغن سایی کولی دکه سایی ده حرم نبار ده با. آتواف ده خلپ مسجد که ده ده متعلقات بیانی ده حیل وقال ابراهیم ابراهیم نخیوی لاباس انتقلال آیا شوایات نیم لستیشی حیدر ولم یا ربن عباسن بالقرار تیلی جنوب باسا ابن عباس بی جنوب سر خیرات تستیش. وکانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسکر اللہ علیہ کل احیانه سیدو با بار وقت ذکر کرو وخانتا ما کننا نامورو نسج الحیدہ منت حکمو من خذبا و دعا گانی بکی وخانا نبی ابو کتاب صلی اللہ علیہ کتاب ابو سفیان واي خير الخلق له حضور خطر وغصا فقرا له فدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه الصواب وانهركم الله نعمد الى الله ولا شريك له كل مسلم وقال طون جابر حادثه تشد فنات تلك المناسك كلها عايش بدون احكام بركني غير توافل وبس ولا تسلیم بنکی. و خار الحکم و حکم وی د فقید ایمام ابو اني لازبح و آن جنوب. زخرب حال داره چپ آل علقم از خودنم یادیگر. و خار الله عزوجل ولا تاکلوم اس الله. دی بات ایمام بخاری و مساله تی شارکی ترمیزی کم نمیلوا. خوبیم دوست. عدا چه ده قرآن شریف لستل حیده و جنب قولی شکنه و نفسه ندری وارا فقه ملت وی چنه شی لسته مادون ده آیات لستیش فا آیات بنا لولی امام مالک سه بی خیر ده آیاتم لستیشی لنگ سورتم لستیشی و پنید ده تعوض ده تبرک ده تا نپنید ده تلاوت ده امام بخاری مسلک واسی ہے ده اوی حیضا و جنب آهتون و شریف لستیش نو ده چکم جانب خوخ کی داگ جانب آقوات نخلقه نو دبخ اسمدل آئیلو تحشان راوکر یو حدیث آئیشی نبی کریم آمن نخلقه بل آثار دا صحابو دا تابعین وی حدیث دا عشی مرفوان دا دکانا يذکر الله على كل احیانه نمپا خن... سید الكائنات چی بذکر کو پا ٹھول حالاتو که حالاتو که دو جنابت حانت امراضی او ذکر پا عموم که قرآن شریف ام داخل او دا ذکر مبارک ذم السحام والتأمين نقل ينقل كل ده دروان الفقهاء لكنا نغيرك انت ده اللهم ارفع حديث تعاشرك عن يذكر الله على كل احيائه دروان فقهاء بنغني نذوي الله عنه کان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا یحجبه او قار لا یحجبه شیئ من القرآن ایلا الجناب بداود کی بمیلی گا حضور مبارک نما نکو نا قرآن شریف دلستون ایشی مگر جنابت نو جنابت پا حالت کے داند سارت نو چی نس حدیث دلالت پا دیکی چی جنابت کے قرآن شریف ممنون دے نوستلال پا حدیث دا آشید سینوه ده دره و جنه آول دا فی مود الخاص جگڑا خوبا ذکر که نه ده جگڑا خوبا تلاوت که نه منتوستلال پا اسکر اللہ علا کل احیانهی ده جواز ده تلاوت ده فارا پشکه ده استدلال بالعام دی فی الموضی الخاص او استدلال بالعام فی الموضی الخاص پر دعوی خاص اکن ده استدلال سینی خصوصاً چه معارضی صریح صحیح, صحیح او منصوص حدیث وی بیندان چه ده کلی احیانی هین امراض هر وقت نده حالات متجدده متبدل دید ان اس طرح ذکرو ذکروں ماخام کی ان ذکروں دا کہنا کہ ہر وقت حضور معاذ نے کرے بیبیان بیان سرائے حضر نے کرے بیت الخالات نے چلے جہاد نے نہ کرے دشمن نے کھانا نے نہ مطلق نہ رہے مراتن حالات متجددا متواصله در این در ذکر نمبراد ما سوا در قرآن سبحان اللہ اللہ و اکبر سبا چه بشونو دست بیوی الحمدللہ اللذی اما تنا احیانا بعد ما ما تناوی لیه نشو ما خامتی بیداوی اللہم آدھا اقبارو لیلک و ادبارو نحالکا و اصوات نحالک و, و دعاتی کفت ترلیک ما سبخن کی بیداوی باران چی بیولی دا بیوی نو ده آسکار دو آگانتی مالتی سب در ذکر نمرا ذکر قلبی ایلی ایک در صوفیان وہ ذکر قلبی پا قرآن و پا حدیث کی